این داستان آب حیات. در روزگارای قدیم پادشاهی به بیماری سختی دچار شد. همه فکر میکردند که اون به زودی می میره.سه پسر پادشاه وقتی وضعیت پدرشون و فهمیدن خیلی ناراحت و غمگین شدند. کنار باغچه قصر رفتند زانوی غم به بغل گرفتند و زار و زار گریه کردند. وقتی سرگرم گری و زاری بودند، پیرمردی رو دیدن که نزدیک اونا اومد و علت ناراحتیشون رو جویا شد. اونا جواب دادن که پدرشون مریضه. امیدیم به شفای اون نیست و اونا هم نمی باید چیکار کار کنن. پیر مرد گفت اگه درد این کار رو قبول کنین راهی برای درمانش وجود داره. اگر اون قطره از آب حیات بنوشه بیدرنگ خوب میشه. بلی دستیافتن به آب حیات کاری بسیار دشواره. پسر بزرگتر گفت من سعی می کنم اونو پیدا کنم. بعد نزد پادشاه مریض رفت و اجازه خواست تا بره و اون آب موجزگر رو که تنها داروی علاج پدرشه پیدا کنه. پادشاه مخالفت کرد و گفت کار خطرناکیه ترجیح میدم بمیرم ولی شما به استقبال خطر نرین. شاهزاده اونقدر اصرار کرد که پادشاه بالاخره برخلاف میل باطنیش رضایت داد شاهزاده با خودش فکر کرد اگه این آب حیات رو پیدا کنم اون وقت مورد توجه پدرم واقع میشم و در نهایت تاج و تخت اونو به ارث میبرم بلا فاصله وسایل سفرش رو فراهم کرد و به افتاد بعد از طی مسافتی کوتوله را توی جاده دید. کوتوله جلوشو گرفت و فریاد زد: با این عجله کجا میری؟ شاهزاده با قرور بسیار جواب داد: به تو چه ربطی داره که من کجا میرم؟ و بعد هم ازش دور شد. این رفتار اون کوتوله رو خیلی عصبانی کرد و کوتوله پسر مقرور پادشاه رو نفرین کرد. شاهزاده به راهش ادامه داد تا به گذرگاهی رسید که از بین دو تا کوه او همونطور که از گذرگاه رد میشد متوجه شد که راه تنگ و تنگتر میشه. دست آخر اونقدر این کوه ها به هم نزدیک شدن که اون نه میتونست قدمی به عقب برداره نه یک قدم به جلو برداره. داره. حتی نمیتونست از روی اسب پایین بیاد. به نظر میرسید در بین دوتا کوه زندانی شده بود. پادشاه بیمار روزهای زیادی چشم به راه پسرش موند ولی ازش خبری نشد. دومین برادر از پدرش خواست و التماس کرد که اجازه بده اون دنبال آب گر بره. اونم خودخواهانه پیش خودش فکر کرد برادرم که مرده لابود سلطنت به من میرسه. پادشاه مثل دفعه قبل ناراحت و ناراضی بود ولی بالاخره رضایت داد. اونم از همون ای رفت که برادر بزرگش رد شده بود. مدتی که از سفرش گذشت اون با همون کتوله روبرو شد. کتوله جلاش گرفت و پرسید با این سرعت کجا میری؟ اون جواب داد آدم به کچولو میخوای از کار من سردر بیاری؟ ولی من چیزی بهت نمیگم. اینو گفت و از اونجا دور شد. کوتوله اون رو هم نفرین کرد. و دومین پسر پادشاه هم در حین عبور از گذرگاه بین دو تا کوه به همون سرنوشتی دوچار شد که برادر اولی دچار شده بود اونم طوری بین دو تا کوه زندانی شد که نه راه پس داشت نه راه پیش اونهایی که به خودشون میبالند و از خودشون راضی هستند سرنوشتی بهتر از این ندارند مدتها گذشت و از پسر دوم خبری نشد دیگه نوبت پسر سومی بود که با اصرار از پدرش اجازه بگیره و دنبال آب شفا بخش بره. اونم سر راه به کتوله برخورد. کتوله پرسید با این عجله کجا میری؟ شاهزاده با شنیدن صدای اون توقف کرد و جواب داد در جستجوی آب حیات هستم تا با اون پدرم رو از مرگ نجات بدم. کتوله پرسید آیا میدونی چطور اونو پیدا کنی؟ شاهزاده جواب داد نه کوتوله گفت خب چون رفتاری بهتر از برادرای مقرورت داشتی اطلاعات لازم رو در اختیارت میذارم تا به این آب حیرت انگیز دست پیدا کنی این آب در چاه قصریه که اون قصر جادو شده تو هرگز نمیتونی وارد قصر بشی مگر اینکه من یک عصای جادویی و چند قرص از نونی به تو بدم که هرگز تموم نمیشه در که باز کردی، سه تا شیر با دهنهای باز میبینی. فوری نونها رو به طرف اونها پرت کن. مدتی کاملا ساکت و بی حرکت میمونند. در این فاصله باید سری بجنبی، بری از چاه آب برداری و تند به سمت دروازه قصر برگردی. دروازه این بار با یک ضربه بسته میشه و تو کاملا از خطر در امان میمونی. شاهزاده از کوتوله تشکر کرد. اصای آهنی و نانهای تمام نشدنی را برداشت و بسیار امیدوار به راه افتاد. وقتی به دروازه رسید، اصاش را به اون کوبید. دروازه هم با سه تا ضربه اصا باز شد. نان شیرها را از حرکت باز داشت. شاهزاده وارد قصد شد و به طرف سالن باشکوهی رفت که شاهزاده جادو شده در اونجا نشسته بود. اون حلقه رو از انگشت شاهزاده خانم در آورد و شمشیری رو که در کنارش بود برداشت. کمی بعد شاهزاده وارد اتاقی شد و زن زیبایی رو دید که اونجا ایستاده. زن بسیار خوشحال بود و میگفت گفت شاهزاده جادویی رو که بر اون مسلط بوده شکست داده و حالا نوبت اونه که تاج و تخت رو از آن خودش بکنه. شاهزاده خانم بعد اضافه کرد که اگر شاهزاده دلش خواست میتونه یک سال دیگه برگرده و اونو به همسری بگیره. بعد اونو راهنمایی کرد که از چه راهی به چاه برسه و به آب شفا دست پیدا کنه. اون هشدار داد که باید تا قبل از ساعت دوازده آب را از چاه بکشه. شاه ساده به جس جوش در قصر ادامه داد تا به اتاقی رسید که تخت خواب راحت و زیبایی در وسط اون قرار داشت. دیدن رخت خواب اونو که واقعا خسته بود بس کرد تا کمی دراز بکشه و استراحت کنه. به این ترتیب شاهزاده به خوابی عمیق فرو رفت و تا وقتی ساعت زنگ یک رو به دوازدر رو نباخت در خواب بود. با شنیدن ضربه های ساعت با وحشت از خواب بیدار شد و به سرعت برق به طرف چاه رفت و با سطلی که کنار اون بود آب کشید و با عجله برگشت. وقتی به دروازه آهنی قصر رسید ساعت دوازده ضربه نواخت ضربه های اون ساعت آنچنان نواخته میشد که به مغز استخونش ضربه میزد اما اون از خوشحالی سر از پا شناخت چون آب حیاتو پیدا کرده بود و میتونست پدرش و از مرگ نجات بده با عجل راه خونش در پیش گرفت سر راه دوباره با اون کتوله برخورد کرد کوتوله شمشیر و قرص نونو که در دست شاهزاده دید گفت تو در واقع چیزهای با عرضش به دست آوردی. با اون شمشیر میتونی یک لشکر رو به قتل برسونی. ولی شاهزاده دلش نمیخواست بدون برادراش به قصر برگرده. برای همین از کوتوله پرسید ممکنه بگی چطور میتونم برادرامو پیدا کنم اون دوتا در جستجوی آب حیات مدتی پیش از من سفرشون رو شروع کردند، ولی هرگز برنگشتند. نگشتند جواب داد اونا آدمای های مقرور و از خود رازی بودند من اونا رو نفرین و جادو کردم هر دو برادرت میان دو تا کوه زندانی هستن و نمیتونن خلاص بشن شاهزاده اون قضر التماس کرد که بالاخره کتوله پذیرفت و قول داد اونها رو آزاد کنه ولی گوش زد کرد تو باید مواظب خودت باشی وقتی اون دوتا آزاد بشن به موفقیت تو حسادت میکنن اون دوتا های پاکی ندارن وقتی دوتا برادر بزرگتر آزاد شدند شاهزاده جوون از دیدن اونا واقعا خوشحال شد و همه ماجرایی رو که پیش اومده بود براشون شهر داد و گفت که چطور تونسته یک سطل از آب معجزه‌گر رو به دست بیاره و شاهزاده خانم زیبایی رو در قصر جادو شده نجات بده. اون گفت که شاهزاده خانم قول داده همسر اون بشه و گفت آخر سال وقتی شاهزاده خانم به سلطنتی خودش رو تصاحب کنه نزد اون برمیگردم تا با هم ازدواج کنیم. بعد از اینکه برادرا به هم ملحق شدند، تصمیم گرفتن نزد پدرشون برگردند. در راه به سرزمینی رسیدند که مردم اون از جنگ و قهطی دچار مصیبت شده بودند و حتی خود پادشاه هم گرسنه بود. شاهزاده جوون وقتی اوزار رو اینطور دید نزد پادشاه رفت و با نانی که هرگز تمام و بیات نمیشه پادشاه و مردم اون سرزمین از گرسنگی نجات داد و حتی شمشیرش رو به پادشاه قرض داد. شاه با اون شمشیر تونست به لشگریان دشمن حمله ببره و اونها رو تارمار کنه. به این ترتیب آرامش و خوشی دوباره به اون سرزمین بازگشت. بعد از اینکه شاهزاده جوون نان و شمشیر خود رو پس گرفت، همراه دوتا برادر دیگرش به طرف قصر پدرشون براه افتادند. در ادامه راه شنیدند که دو سرزمین دیگه هم دچار جنگ شدن و مردم اونا فقیر و گرستنند. برادر کوچکتر با نان و شمشیر حیرت انگیز خودش مردم اون سرزمین رو هم نجات داد. اونا برای نجات اون دوتا سرزمین مجبور شده بودن راه بسیار طولانی رو طی کنند. بنابراین برای برگشت به زادگاه خودشون باید سوار کشتی می و از دریا عبور می کردند. در طول سفر دو تا برادر بزرگتر با هم نقشه کشیدند که برادر کوچکتر رو سربنیست کنند. برادر بزرگتر گفت حالا که برادر کوچیکمون موفق شده به اون آب شفابخش دست پیدا کنه و ما در این کار توفیق به دست نیاوردیم پدر سلطنت سلطنتو حتما به اون میده در حالی که سلطنت حق ماست این افکار حسادت آمیز باعث شد اونها تصمیم بگیرن امیدای برادر کوچکتر رو نقش براب کنند اون دوتا تا که منتظر فرصت بودند یک روز وقتی برادر کوچیک روی عرشه به خواب رفته بود، رفتند آب شف رو از ظرف اون در ظرف خودشون ریختند و بعد ظرف خالی برادر رو با آب شور دریا پر کردند. همین که وارد قصد شدند، برادر کوچکتر با عجله ظرف خودش رو آورد از آب داخل اون در لیوانی ریخت و به پدر بیمارش خورند. تولی نکشید که حال پادشاه با خوردن آب شور دریا بدتر شد. وقتی پادشاه از بدتر شدن حالش شکایت میکرد، دوتا برادر بزرگتر جلو رفتن و گفتند: حتما در اون سم ریخته. بعد از آبی که دوزیده بودند، لیوانی به پدرشون دادند. همین که پادشاه کمی از اون آب نوشید، بیماریش درمان شد و چندان تولی نکشید که احساس کرد حال و قدرت جسمیش مثل قبل شده. دو تا برادر نزد برادر کوچیکتر رفتن و با لحنی مسخره گفتند شکی نداریم که تو آب حیاتو پیدا کرده بودی. زحمت کشیدی. ولی باید حواستو هم جمع می کردی. وقتی خواب بودی ما اونو با آب دریا عوض کردیم. وقتی موقعش برسه یکی از ما دو تا برادر حق تصاحب اون شاهزاد خانم زیبا رو داریم. حواستو جمع کن. مبادا دست از پا خطا کنی. پدرمون دیگه به تو اعتماد نداره و اگه کمترین ادعا و اشارهی بکنی زندگیت به باد میره فقط اگه ساکت بمونی در امان هستی پادشاه واقعا از دست فرزند کوچکترش سخت عصبانی بود و فکر میکرد او قصد جانشو کرده بود برای همین میخواست که ترتیبی بده که او پنهانی کشته بشه قرار شد کوچکترین پسر همراه پادشاه و یک شکارچی به شکار برند و بدون اینکه کسی مزنون بشه شکارچی با یه گوله اونو بکشه در روز موعود شاهزاده کنار شکارچی اسبشو میراند اون که متوجه چهره غمگین شکارچی شده بود سوال کرد چرا اینقدر قیافت در همون گرفته است شکارچی جواب داد جرعت ندارم علتشو بگم شاهزاده اصرار کرد و گفت زود باش بگو نگران نباش بگو شکارچی با ناراحتی اعتراف کرد برای این ناراحتم که پادشاه به من دستور داد به طرف تو تیراندازی کنم و تو رو بکشم. شاهزاده وقتی این حرفو شنید نترسید ولی به شکارچی گفت: "خواهش میکنم به من رحم کن. من لباسهای سلطنتیمو به تو میدم و تو لباسهای جنگلبانیتو تو به من بده." شکارچی خوشحال شد که از شر این مأموریت ناجور خلاص میشه. بعد گفت: "با کمال میل این کارو انجام میدم. من که نمیتونم با دستای خودم تو رو بکشم." شکرچی به خونه رفت و شاهزاده در جنگل موند. بعد از مدتی از قصر پادشاهانی که شاهزاده به اونا کمک کرده بود، برای قدرشناسی شناسی سه تا عرابه پر از طلا و جواهرات گرانبها ها نزد پادشاه که دیگه حالا سالم و تندرست شده بود فرستادند. کسایی که همراه از پرستلا نزد پادشاه اومده بودند، گزارش دادند که چطور فرزند اون پادشاه سرزمین اونا رو از بیچارگی نجات داده. این گزارش ها پادشاه و و ناراحت کرد. پادشاه با خودش فکر کرد که شاید پسرش بیگناه بود و به اطرافیان خودش گفت کاش پسرم الان زنده بود، کاش دستور قتلش رو صادر نمی کردم. شکارچی نزد پادشاه رفت و گفت اون هنوز زنده است. قلبم راضی نشد فرمان شما را اجرا کنم. بعد اون چرا که اتفاق افتاده بود برای پادشاه شهر داد. دل تو دل پادشاه نموند و دستور داد در تمام قلمروش جار بزنند که اگر فرزندش برگرده در امانه. در این میان شاهزاده خانوم خودشو برای برگشتن شاهزاده آماده می کرد. اون دستور داد راهی بسازند که به دروازه قصر منتهی میشه و طوری اونا تزیین کنن که مثل طلا برق بزنه. شاهزاده خانم به افرادش گفته بود که هرکس با اسب اومد و قصد دیدن اونو داشت و خواست از این راه وارد بشه بهش اجازه بدن. اما اگر کسی از راههای دیگه به طرف قصر بیاد بدونن که غریبه است و نباید راهش بدن. برادر بزرگتر که دید سال داره به پایان میرسه، پیش دستی کرد و خواست به دختری که برادرش نجات داده بود وانمود کنه نجات دهندش بوده تا از این طریق با شاهصاد خانم ازدواج کنه و قلم رو سلطنتیش رو تصاحب کنه. اون با این فکر و خیال راه افتاد. وقتی به قصر نزدیک شد و زرق و برق اون جاده طلایی رو دید، فکر کرد با اسب روی ای به این زیبایی برم؟ با این فکر برگشت و از راه دیگه به طرف قصر رفت وقتی از راه دیگه به دروازه قصر رسید مامورا گفتن چون شاهزاده خانومونو نمیشناسه اجازه ورود نداره اون به اجبار برگشت وقتی برگشت برادر دومی به راه افتاد اونم نزدیک قصر به جاده طلایی رسید همین که اسبش خاص روی اون جاده زیبا و طلایی پا بذاره اونو عقب کشید و مثل برادرش گفت هی که از این جاده عبور کنم با این حساب این برادر هم از راه دیگه‌ای به دروازه قصر نزدیک شد و ماموران قصر به اون اجازه ورود ندادند و گفتند شما اون شخص نیستین که شاهزاده خانم منتظرشه بالاخره مهلت یک سال تموم شد و سومین پسر پادشاه تصمیم گرفت جنگل و ترک کنه و به قصری بره که محبوبش در اونجا انتظار میکشید. وقتی با اسب به قصر نزدیک شد، افکار و احساساتش آنچنان متوجه شاهزاده خانوم بود و اون قصر آرزوی دیدن اونو داشت که متوجه زیبایی جاده نشد و با اسب از روی اون یک راست به طرف دروازه قصر رفت. به او اجازه ورود دادند، و دروازه قصر رو بروش باز کردن شاهزاده خانم به استقبال اون اومد و با شوق و حیجان اونو پذیرفت و گفت که نجات دهنده واقعیش اون بوده و از این پس فرمانده ای کل اون سرزمینه طولی نکشید که اون دو در مراسمی با شکوه و مجلل با هم ازدواج کردند بعدها اون برای همسرش توضیح داد که چطور پدرش میخواستنو بکشه ملکه بعد از شنیدن ماجرا به دیدن پادشاه پیر رفت و جریان رو باهاش در میون گذاشت و گفت که چطور برادران بزرگتر همسرش رو فریب دادن و بعد با تهدید وادارش کردند سکوت کنه. پادشاه تصمیم گرفت دوتا پسر بزرگتر خودشون مجازات کنه ولی اونها فرار کرده بودند. دو برادر قصد داشتن با کشتی و از راه دریا به کشور دیگهی برن و از چنگال عدالت فرار کنند اما در راه کشتی صدمه دید و از آن پس کسی از آنها خبری نشنید کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستیتی نشانی وبلاگ ما m FA نقط مهران دوستی. blogva.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی.